ششمین اصل سلامتی حقایقی درباره پروتئین است آیا تا شنیدید که اگر دروغ بزرگی را با صدای بلند و جدی تعریف کنید خواهناخواه مردمان را باور می کنند به دنیای عجیب پروتین ها خوش آمدید هیچ دروغی بزرگتر از این نیست که پروتئین برابر با انرژی و حفظ سلامتی است مردم بیشتر به این خاطر از پروتین ها استفاده میکنند که فکر میکنند با مصرف آنها انرژی زیادی را به دست میآورند، عمرشان طولانی میشود، استخانهایشان محکم میشود و سالم سالمتر میمانند. اما جالب اینجاست که بدانید در تمام این موارد پروتئین اثر معکوس دارد. فکر میکنید که میزان مصرف پروتئین روزانه شما چه میزان باید باشد؟ فکر میکنید بیشترین نیاز انسان به پروتئین در چه زمانی است به احتمال زیاد پاسخ خواهید داد در دوران نوزادی خداوند شیر مادر را برای نوزادان تهیه کرده است شیر تمام موارد مورد نیاز کودک را به او میرساند حدس می زنید چند درصد از شیر مادر را پروتئین تشکیل می دهد؟ پنجاه درصد بیست و پنج درصد یا ده درصد خیر میزان آن بسیار کمتر است. هنگام تولد نوزاد شیر مادر تنها دو درصد پروتئین دارد و این مقدار در شش ماهگی کودک به یک و دو دهم تا یک و شش دهم درصد کاهش میابد. پس چطور اعتقاد دارید انسان نیاز به مقادر زیادی پروتئین دارد؟ هیچ کس واقعا نمیداند میزان پروتین مورد نیاز ما چقدر است. آکادمی ملی علوم می گوید که هر مرد جوان آمریکایی در روز نیاز به پنجاه و شش گرم پروتین دارد. در مقابل اتحادیه بین المللی علوم تغذیه بر این باور است که میزان پروتین مورد نیاز مردان بالغ بین سی تا صد گرم است. به نظر شما کدام درست است؟ من با آکادمی ملی علوم تماس گرفتم و پرسیدم چطور به عدد پنجاه و شش گرم در روز دست یافتند. در حقیقت مدارک آنها گواه بر این واقعیت بود که ما نیاز به سی گرم پروتئین داریم اما آنها پنجاه و شش گرم توصیه کردند. این در حالی است که جدیدن میگویند پروتئین مازاد به دستگاه دفع ادرار فشار می آورد و آن را خسته می کند. پس چرا طبق گفتهی خودشان مصرف مقدار بیشتری پروتئین را توصیه کردند؟ تمام اینها به خاطر سودها و پول است که از طریق فروش مواد غذایی پروتین دار به سرمایه را می رسد. آیا می دانید بهترین شیوه بازار یابی در جهان چه شیوه ای است ؟ این است که کاری کنید افراد فکر کنند با عدم مصرف محصول شما جانشان را از دست می دهند. همین شیوه را سرمایه داران در مورد مصرف پروتین به کار گرفتند اجازه دهید با یک مثال قضیه را برایتان روشنتر کنم. آیا به نظر تا مصرف پروتئین باعث ایجاد انرژی می شود بدن برای تولید انرژی چه می کند ابتدا از گلوکز میوه ها سبزیجات و دانه ها استفاده می کند بعد نشاسته و سپس چربی ها را مورد استفاده قرار می دهد و دست آخر که ماده برای تولید انرژی پیدا نمیشود به سراغ پروتئین ها میرود پس انرژی زابودن پروتین ها تنها یک افسانه است افسانه دیگر افزایش مقاومت بدن با مصرف پروتین است. این هم یک اشتباه است. پروتین اضافه در بدن باعث تولید نیتروژه می شود که این ماده سبب خستگی بدن می گردن. شاید برایتان جالب باشد که بدانید افرادی که بدن سازی کار می کنند و پروتین زیادی مصرف می کنند پف کرده و بزرگی دارند. اما هیچ کدام از آنها قادر به شرکت در دوی ماراتون نیستند. همین حالا می توانم برایتان صدها دلیل بیاورم که خوردن گوشت برای تولید پروتئین در بدن نادرست ترین کار ممکن است شاید برایتان جالب باشد که بدانید یکی از مواردی که از هضم پروتئین در بدن حاصل می شود آمونیاک است اجازه بدهید در این رابطه به دو نکته اشاره کنم اول اینکه گوشت مقدار زیادی اسید اوریک دارد و این اسید اوریک یکی از مواد زائدی است که در نتیجه فعالیت سلول های زنده تولید می شود. کلیه ها اسید اوریک را از جریان خون می گیرند و به همراه اوره به مثانه می فرستند. اگر اسید اوریک بلا و به طور کامل از جریان خون گرفته نشود، مازاد آن در بافتهای بدن ذخیره و بعداً باعث بیماری می شود. بنابراین آیا دوست دارید که اسید اوریک لاشه حیوانی را بخورید؟ اگر میخواهید گوشت و پروتئین مصرف کنید، باید این کارهایی که میگویم انجام دهید. ابتدا آن را از محلی بخرید که مطمئن باشید حیوانات از چراگاه طبیعی تغذیه کردند و به آنها هورمون رشد ندادند. دوم اینکه مصرف آن را کاهش دهید و در طول روز مصرفش را کنترل کنید.